استماب و سما شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقام دستشویی منزل ما ته حیاته همسایه اون بر دیوار ما این مغنیه مطرب از این میزنه نمیدونم دنبکی فلانی از این بازی ها. من گاهی میرم دستشویی صداش میاد بدم نمیاد طول میدم حضرت فرمود این استماع حرامه ولی سماعش شون چاره ای نداری مثلا میخوای بری دست شویی در اون لحظه ای که به گوشت میرسه گناه نداری ولی عمدن میشینی طول میدی بشنوی میشه حرام این میشه استماع